هفت بهانه برای به تحویق انداختن کارها بهانه آوردن برای شروع نکردن کارها بسیار آسان است. مهمان است که بدانیم که این بهانه به واقع دلیلی قابل قبول است و چه زمانی تنها راهی خلاقانه برای انجام ندادن کار است. احساس تنبلی ما حاصل از ترسی ناخداگاه یا باوری محدود کننده است. اما وقتی برای کندوکاو در این افکار وقت بگذارید خواهید دید که چقدر آسان است که بر آنها غلبه کنیم و ساختار فکری فعالیت محفری را جایگزین آنها کنیم. ذهن شما ماشین شگفت‌انگیزی است و به شما قدرت خلق هر چیز حاصل از تخیلتان را میدهد. اما می میتواند توانایی شما برای انجام کارها را نیز محدود کند. این که ما در میانه انجام پروژهای به گل می نشینیم، به دلیل عدم شور و شوق برای به پایان رسانیدن آن نیست، بلکه بیشتر به دلیل الگوهای فکری است که در ذهن ما می چرخند. ریشه علت عادت به تعویق انداختن کارها از باورهایی می آید که ما به وسیله آنها خودمان را محدود می کنیم. وقتی این باورها لجام گسیخته و, و به صورت افکار منفی در مغز ما آزاد شوند، باعث می شوند تا برای انجام ندادن هر کار و پروژهی ای بیاورید. اما اگر این بهانه ها را به چالش بکشید، خواهید دید که اغلب آنها نتیجه ترس های پنهان یا الگوی عادت های ویرانگر هستند. در اینجا به هفت مورد از این بهانه ها اشاره می کنید. دانستن اینکه چرا این بهانه ها را می‌آورید، شما را یک قدم به قلب بر نزدیک تر می کند. یک مهم نیست مردم اغلب از انجام وظایفی که به نظر مهم نمی آیند سر باز می زنند اما این وظایف در اصل یا ناخوشایند و به ظاهر بی ارتباط با اهداف بلند مدت شما هستند و یا زمان اندکی برای انجامشان باقی مانده است انجام آنها به غلبه بر یکی از ترس اصلی وجود شما نیازمند است فرقی نمی کند که در سرتان چه می گذرد بسیار پیش می آید که انجام کاری را تنها به این دلیل که به نظرتان مهم نمی آید به تعویق می اندازید. یکی از ساده ترین این بهانه تراشی، پرورش عادت گرفتن تصمیمات ساده است. یا تصمیم بگیرید که مشغول انجام دادن کارتان شوید و یا آنقدر شهامت داشته باشید که اصلا انجامش ندهید. همانطور که در ادامه نیز خواهید آموخت، بهترین راه غلبه بر تنبلی گرفتن تصمیمات درست در زندگی است حتی اگر این تصمیمات منجر به حذف کارهایی که زمانی به نظرتان مهم می‌رسیدند باشد دو باید اول فلان کار را انجام بدهم پروژه‌ها اغلب نیمه کار باقی می‌مانند زیرا که همیشه باید ابتدا کار دیگری انجام شود هر هرچه که باشد از یک تلفن زدن تا یک خرید ساده کار را برای به تحویق انداختن پروژه پیش رو آسان می کند. شما همیشه می توانید این بهانه را با پرورش عادت تعریف کامل هر پروژه از میان ببرید. نکته مهم در اینجا تقسیم پروژه به فعالیتهای کوچکتر است که می توانید آنها را در برنامه روزمره تان بگنجانید. پیش از انجام کار به اطلاعات بیشتری نیاز دارم. گاهی این بهانه در واقع عذر موجهی است. اغلب پروژه‌هایی که پیش روی ما قرار می‌گیرند، پیش از آغاز شدن نیاز به انجام تحقیقات ای دارند. به هر حال اگر این بهانه را بیش از حد مثلا هفته یک بار برای به تأخیر انداختن کارهایتان به کار می‌گیرید، من دیگر آن را عذر موجهی نمی دانم با وجود آنکه ممکن است در این مورد خوردهگیر به نظر آیم اما به نظرم ساده ترین راه حل برای ازمیان بردن این بهانه همانا دست به شدن و اطلاعات بیشتری به دست آوردن است این که نمیدانیم فلان کار را چگونه باید انجام دهیم هرگز نباید مانعی انجام آن کار شود مخصوصا این روزها که میتوان به راحتی هر مهارتی را آموخت یا فردی صاحب آن مهارت را پیدا کرد تا کار لازم را برایتان انجام دهد چهار، احساس استیصال میکنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است همه ما لحظاتی که احساس می کنیم واقعا مستصل شده این را تجربه کرده ایم در چنین لحظاتی به نظر میرسد هر چقدر هم که سخت تلاش کنیم فهرست کارهایی که باید انجام دهیم تمامی ندارد البته معمولا این مشکل برای مردمانی پیش می آید که طرز فکر سوپرمن دارند و خود را به تنهایی مسئول شخصی انجام تمام کارهایشان میدانند احساس استیصال را می توان با تمرکز روی نخستین و مهمترین پروژه و حذف کردن یا به آینده مکل کردن سایر پروژه ها از میان برد. وقتی که دانستید چگونه مهمترین پروژه ها را شناسایی کنید، به راحتی خواهید توانست به ترتیب و یکی یکی از پس باقی پروژه ها نیز برایید. پنج فعلا وقتش را ندارم این بهانه هم می تواند عذر کاملاً موجهی باشد. گاهی اوقات ما بر روی پروژهی تمرکز کرده ایم و البته که در چنین حالتی آغاز پروژهی دیگری بیمهن است. به هر حال عذر وقت ندارم اغلب به صورت بهانه زشتی برای عادت به تعویق انداختن دائمی کارها در می آید. گفتن اینکه فعلا وقت انجام کاری را ندارید، قول آینده‌ای روشن را می‌دهد که در آن انجام آن کار آسان‌تر و خوشایندتر است. با این وجود بسیاری از مردم به صورت ناخودآگاه این بهانه را با امیدی پنهانی بدین موضوع می تراشند که سرانجام نیاز انجام به آن کار از میان خواهد رفت. اگر شما آغاز دست به کار شدنتان را همیشه به آن یک روز بعد از ظهر افسانه‌ای موکول کنید، احتمال آن بسیار است که هرگز از عهده انجام پروژه مورد نظرتان بر نخواهید آمد. 6. فراموش می کنم انجامش دهم مردم اغلب کارشان را به تعویق می اندازند زیرا که فراموش می کنند انجامش دهند. البته همه ما لحظاتی را تجربه می کنیم که در آنها چیزی از یادمان برود. اما اگر این فراموش در انجام دادن کار خاصی مزمن شود، نشانه مقاومت شدید ما در برابر به انجام رسانیدن آن است. شاید این کار خاص آنقدرها به نظرتان مهم نمی‌رسد. شاید از شکست در آن میترسید و یا شاید هم به خوبی برنامه هایتان را سازماندهی نمی کنید. نکته در اینجاست که فراموش کردن هرگز عذر موجهی برای به تویق انداختن کاری نیست، بلاخره باید به جایی برسید که یا آن کار را انجام دهید و یا به طریق دیگری از شهرش خلاص شوید. هفت حالش را ندارم البته همیشه کارهای ناخوشایندی برای ما پیش می آید که از انجامشان وحشت داریم. راز موفقیت در اینجاست که بدانیم واقعاً چه کاری را باید انجام بدهیم. و چه کاری را می توانیم به طور موقت به آینده کل کنیم ما اغلب این دو گروه از کارها را با همدیگر دیگر اشتباه می گیریم و در نتیجه کارهایی که ممکن است در دراز مدت تاثیر مثبتی روی زندگی ما بگذارند را انجام نمی دهیم این بدان معناست که صرف اینکه نمی خواهید کاری را انجام دهید نباید سبب به انداختن آن کار شود راه حل بهتر آن است که ببینید چرا از انجام این کار وحشت دارید تا شاید نشانه های مشکلات بزرگتری در پس آن بر شما روشن شود. چرا همه این بحانه ها چرند هستند؟ هیچ کس از بهانه تراشی نیست. فرقی نمی چقدر در کارتان موفق باشید. شما هم گاه و بیگاه در زندگیتان به جایی می رسید که برای انجام ندادن کاری دلیلی می تراشید. به همین علت هم هست که باید عاداتی را در خود پرورش دهید که بر ساختار فکری بهانه تراش شما غالب شود. در ادامه این کتاب مجموعه ای از برنامه های روزمرگی را مرور می کنیم که به آسانی می توانند به روزهای پرمشقلی شما اضافه شوند. من به آنها نام های زده تنبلی دادم. زیرا آنها به شما کمک می کنند در مواقع تنبلی و بی انگیزگی هم بتوانید دست به کار انجام فعالیت هایتان بشوید. با بررسی هر کدام از این آدت به این موضوع هم می‌پردازیم که چگونه این عادت می پاسخی برای یکی از هفت بهانه معمول به تویق انداختن کارها باشد. وقتی هم که فهمیدید چگونه می توانید از صد این باورهای محدود کننده بگذرید، به راحتی راز مقاومت در برابر ووسسه به تعویق انداختن امور را خواهید آموخت. بگذارید کار را با آنچه به نظر من مهمترین عادت ضد است شروع کنیم.